میتوان فراموش کرد اثر هانس ولفگانگ کخ ترجمه پریچهر معتمد گرجی با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آذری با گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات مربارید سال 1945 احساس ترس نمیکردم. این دفعه حال دیگری بود. دلم به طرز خاصی مالش میرفت و به تدریج زیاد میشد تا به اوج خود می رسید. بعد کم کم آرام میگرفت تا کی دوباره شروع شود. چیز غریبی است. دیگر بایستی به آن و از عادت کرده باشم. با حالت خمیده در پناهگاه روی نیمکت نشستم و منتظر ماندم تا بمب ها بیایند. و البته آمدند. پناهگاه ما چندان گود نبود. صخفش از کف خیابان بالاتر بود. به طوری که می توانستیم صدای یک نواخت و گوش خراش مخصوص بومب های چهار موتوره را بشنویم. اول قررش یک نواخت هواپیماها ها و در حدود یک دقیقه بعد از آن صدای انفجار همراه با احتراق بمب‌های سنگین را شنیدیم همانطور که گفتم همه اینها به تدریج پیش آمد اول دور بود سپس نزدیکتر و نزدیکتر میشد لحظات انتظار از همه بدتر بود انتظار اینکه مرگ درست بالای سرمان به پرواز درآید صدا به نهو تهدیدآمیزی زیادتر شد بلند و بلندتر و ناگهان جهنمی بپاشد پا چراغ شروع کرد به سوسو زدن. پناهگاه از پی به لرزه درآمد. لرزش سقف را می توانستیم ببینیم. من به سقف نگاه کردم. به لامپ که سوسو می زد و بیوقفه دایره مانند جسم متحرکی که جنبش جاودان داشته باشد، تاب می خورد. به سقف چش دوخته بودم. و نمی که مقاومت خواهد کرد یا نه و دعا می کردم خدایا کاری کن که سقف نریزد در چنین لحظاتی دنیا دیگر کاری پهناوری نبود پناهگاه کوچکی بود با چهار دیوار و یک سقف. زندگی واجهی برای توصیف کلیات نبود خود شخص بود انسان به دیگران نگاه میکند که پتوی دور خود پیچیده و با حالت خمیده روی نیمکت ها نشستند. به تناوب دعا می خوانند یا نفرین می کنند البته همه به جز یک نفر زن ریز نخشی از طبقه دوم به نام ویلش که مقابل من نشسته است پاهایش به زمین نمی رسد. در عوض به جلو و عقب تاب می خورد. به جلو و عقب گنده ای در دست دارد و با ولع به آن گاز می زند از طرز خوردنش پیداست که حسابی از آن لذت میبرد. بیرون پناهگاه جهنمی به پا شده. حاصل سالها زحمت و صرف جویی به آتش کشیده می شود. ساختمان ها و دیوارها مثل اسباب بازی شکاف بر میدارند و خرد میشوند. مردم می میرند. مرد و زن و کودک به یکسان و فارغ از این همه، در این پناهگاه زنی میان سال نشسته است که از هر گازی که به ساندویچ میزند لذت میبرد و پاهایش به جلو و عقب تاب میخورد به مردمی که ترسیده اند و دعا میخوانند چشم می چشمی دوزد. چون کودکی شاد و خوشحال لبخندی به لب میآورد و بعد به ساندویچ خود گاز میزند هواپیماها، ها بومب ها و صدای انفجار ها دور شدهاند بحران فروکش میکند دستهایی که تسبیح را محکم در خود می فشردند، میشوند کسی رادیویی را روشن می کند. تیک تک تیک تک تیک تک این علامت پست فرماندهی رئیس تشکیلات حزب است. ناگهان تیک تک قطع می شود و سپس صدایی اعلام می کند. اینجا پست فرماندهی رئیس تشکیلات حزب در مونیخ است. آتشبارهای های هوایی و هواپیماهای های جنگنده ما، با مفکن‌های مخوف آمریکای انگلیسی درگیر شدند و تا کنون بسیاری از آنها را سرنگون کردند ولی امواج بیشتری از بومبفگن ها از راه می رسند فریادی توجه ما را به خود برمی سقف آتش گرفته صدا از طبقه بالا محل نگهبانی مأمور آتش نشانی است که در قسمت ورودی پناهگاه قرار دارد زنها ناگهان از روی نیمکت هاشان می پرند و سراسیمه به طرف در خروجی می و با شتاب از پله ها به سمت آپارتمان هایشان بالا می روند تا ببینند چه می شود کرد. در همین موقع سه یا چهار مرد به پشت با می روند تا آتش را مهار کنند. همه زنجیروار روی پله ها می ایستند و های آباشن را دست به دست به مردها ها می رسانند. اما چندان فایده ای ندارد. آتش به همه جا سرایت کردند. در آغاز جنگ، خونسا کردن یک بمب چقدر آسان و راحت به نظر می رسید. یگانهای دفاع غیر نظامی در میدانهای عمومی سحنه های را به نمایش در می آوردند و مردم بسیاری نه به خاطر جنبه های آموزشی آن، بلکه صرفاً برای سرگرمی به تماشا می دادند. مأموران ابتدا یک بمب فوسفوری را آتش می زدند. بعد با لباسکارهای سفید و تر و تمیز و کلا براق با جدیت تمام تم به دستی کوچکی را به کار میانداختند و چند سطر شن روی آتش میپشیدند. نمایش به پایان می رسید و گرددیاتورها با کلا خودود های برراغ و لباسکار سفیدشان به همان تمیزی که کار را شروع کرده بودند صحنه را ترک می کردند. به هر حال مطلب اصلی داستان چیز دیگری بود. این نمایشها درست زمانی اجراام می شد که گورینگ از رادیو اعلام کرده بود حتی اگر یکی از هواپیماهای دشمن موفق شود از خط دفاعی نفوذ ناپذیر رایش عبور کند اسمش را به مایر تأخیر خواهد داد این حرف را در مه 1940 زده بود و حالا ژانویه 1945 بود و آلمان مانند اروپا سراسر به ویرانی کشیده شده بود خونه آتش گرفته من و مادرم وارد آپارتمانمان در طبقه همکف شدیم. شام دیشب هنوز روی میز بود و فرقه نازکی از گرد و خاک روی آن را پوشانده بود. اما باز اشتها برانگیز بود. آه، غذای دلخواه من، شنید سل. پنجره‌ها یا بهتر است بگویم قاب پنجره‌ها را باز کردیم. شیشه ها خرد شده و کف زمین پخ شده بودند و از همانجا هرچه چه دم دست بود به باخچه انداختیم. در کمال تعجب دو نفر مرد از پنجره بالا آمدند آنها کشیش های فرانسیسی صمع مجاور بودند بدون گفتن یک کلمه در بردن اساسیه به ما کمک کردند. لباسها رخت های چرک، یک میز، پیژام یک کرست و چند لنگ کفش. دست نگه داشتیم که بشنویم از فراز آسمان سرخ، فام و فروزان صدای یک نواخت هواپیما را شنیدیم داشتم دوباره میآمدند. در ورودی پناهگاه مدتی معطل شدیم. چون مردی را رو روی یک برانکارد به پناهگاه میبردند. او شوهر همان زنی بود که ساندویچ گاز میزد. موقع مهار کردن آتش، تیری از سقف روی او افتاده و گردنش را شکسته بود. او را وسط پناهگاه گذاشتند. یکی از مردها برای بستن زخمای او از همسرش چند حوله خواست. زن حیرت زده، به مرد خیره شد و ناگهان داد زد شما رو به خدا از من نخواهید حوله های نو تمیزم و به خون آلوده کنم مادرم چند حوله به مردها داد که خیلی خوب از آنها استفاده کردند آقای بی بیخبر از اطراف خود روی برانکار دراز کشیده بود یک چشمش بسته و چشم دیگرش نیمه باز بود و چیزی نامفهوم زیر لب زمزمه می کرد. که کنار ها کنار اوزانو زدند و مشغول دعا خواندن شدند. سه روز بعد او را به خاک سپردند. در این میان سکوت و ترس به داخل زیر زمین آمده بود. بیرون پناهگاه انفجار بمب ها و ویرانی ادامه داشت. دو ساعت بعد صدای آخرین انفجار را شنیدیم و کمی پس از آن آژیر رفع خطر حمله هوایی به صدا درآمد. در آن هنگام خانه به کلی، به محاصره آتش در آمده بود با فرو ریختن پله ها به ناچار باید از راه خروج اضطراری استفاده می کردیم با پای بان پیچی شده به زحمت از آن فضای باریک رد شدم پاشت سرم خانم ویرشکه می آمد و با صدای گوش خراش یک ریز جیغ می کشید. انگار از این راه خروجی خوشش نمی آمد. بیرون از پناگاه منظری با شکوه و بیمانند خود نمایه شعله‌های آتش به سوی آسمان شب زبانه می‌کشید و آن را به صورت دریای سرخ خیره کننده ای درآورده بود سنگ فرش جاده طللوی غریبی داشت انگار هزاران قطعه الماس روی آن پاشیده بودند افسوس که جز خورده شیشه چیز دیگری نبود. هر از گاهی یک ماشین آتش نشانی شتابان از خیابان ها اما جز پیشگیری از سرایت آتش به خانه های مجاور، کار چندانی از آنها بر دستهای دسته ای از مردم به طرف کلیسای قدیسه حنا به حرکت در آمدند. آسیب دیدگان حمله هوایی، تهمانده دارایی خود را در کلیسا انبار می‌کردند. شکوه و تقدس آن کاملا رنگ باخته بود. مردم، در حالی که لوازم متفرقی را با خود حمل می کردند، شتابان از درهای اصلی کلیسا وارد می شدند. کودک شش ماهه که در پتو پیچیده شده بود، در کمال آرامش در صندلی راحتی به خواب رفته بود. آنچه از لوازم زندگی ما باقی مانده بود، درست در جلوی محراب مریم مقدس قرار گرفت. هنوز دو باش خواب شنید شنیتزل دست نخورده آنجا بود. یک لقمه بزرگ از آن در دهانم گذاشتم و روی یکی از صندلی هاوار افتادم. درم میخواست بخوابم خوابم، نه، وقت خواب نبود، باید از اساس من حفاظت میکردم بعد از هر حمله هوایی، خیابانهایی که بمباران شده بودند، دو برابر شلوختر از مواقع دیگر میشدند و لابلای تماشاچی چیها کسانی هم پیدا میشدند که برای دستی و قارت آمده بودند چپاول کسانی که قبلا به مجازات رسیده بودند اندو، ویرانی و مصیبت اشخاص نه تنها متاثرشان نمی نمیکرد بلکه آنها را مذوب می ساخت. یک جسد بی دفاع به جای هم دردیتمی آنها را برمیانگی. به طور ناشناس بین توده مردم میلولیدند و در حالی که به ظاهر تماشا چیان بیآزار صحنه های رنجآوری بودند که سرگردان از جای به جایی می رفتند، هرچند یک بار، به زیان دیدگان دلداری میدادند در حالی که صدای حقیقیشان این بود که از هر راهی که ممکن است دست به تارا جنوال آنها بزنند. معدودی از کسانی که خانه در شب ششومه جانویه 1945 مورد حسابت قرار گرفت یا حتی براشفتند. آنها به این وضع خوب کرده بودند. بعضی از خانواده ها حتی دو یا سه بار هست و نیست خود را از دست داده بودند. ناگوارترین منظره حالت کسانی بود که در مقابل خانه های خود که در معرض شعله های آتش قرار گرفته بود ایستاده بودند و با آنکه می‌دانستند هنوز آتش به آپارتمان های آنها سرایت نکرده قادر نبودند وارد شوند آری بیدفاعی همه جانبه و ناتوانی برای مبارزه با جریان ویرانی بود که بیش از هر چیز مردم را ناامیدانه به نفرین و ناززاوامی داشت دیگر چه کاری از ما ساخته بود؟ شانه ها را بالا بیاندازید، فکر و احساستان را با ذکر دشنامی آرامش بخشید. و وقتی مطمئن شدید، کاملا مطمئن که کسی در اطرافتان نیست و صدایتان به گوش کسی نمی رسد، آن وقت فکری را که چند سال اخیر ذهن شما را به خود مشغول کرده بود در قالب کلمات بریزید. اما باید کاملا مطمئن می شدید که هیچ کس صدای شما را نمیشنود در غیر این صورت به یاد داشته باشید که شایعاتی در رابطه با وقایهای که در پشت سیمهای خاردار اردوگاههای کار اجباری میگذشت بر سر زبانها بود وقایهای که در آن زمان ساخته و پرداختهی ازهانه فاسد و هرزه میپنداشتید با وجود این تا آنجا که شما میدانستید ممکن بود حقیقت داشته باشد کسی چه میداند اینجا تا او فقط پنج کیلومتر فاصله دارد همیشه پیش خود چونین میندیشیدیم که خیلی چیزها را می دانیم اما حال که زندگی به معدودی از ضروریات تنزل یافته بود پی بردیم که چیزی نمیدانیم و تازه شروع کرده بودیم که درسمان را یاد بگیریم به خدا سوگند که عجب درسی بود البته هنوز هم آدم های ابلهی را پیدا میکردید که درباره پیروزی داد سخن بدند نه تنها شهرها که جهانی ویران شده بود و آنها همچنان شعار ستیز جویانهی به رغم آگاهی از خطر و بمبها همگام با پیش و پیش به سوی پیروزی را سر می دادند چه شعار تلخی اما ویرانی باور آنها را به پیروزی سختتر کرده بود آگاهی از خطر آنها را به انجام معمولیتشان مرزم می زاخت. حتی من هم به این شعار اعتقاد داشتم اما آخر من پسر بچه بیش نبودم